بخشه 25 دایی در مغازه بود گفت حسن اومده بود دنبال دایی خوب از دستش جسته بودم اما هنوز خطر رفع نشده بود رو کارهای این حسن کوچول زیاد نمیشد حساب کرد اگر باد قضیه تلفن را به گوشش میرساند یک دفعه دیدی از آسمان روی کلم نازل میشد به همین دلیل پشت یخچال مغازه سنگر گرفتم همه فکر و ذهنم پیش لاله بود. باید برای قرار فردا بهش تلفن میکردم. کردم. وگرنه توی این شهر درندشت سر ساعت دو چطور میخواست من رو پیدا کند. صبر کردم که در یک موقع مناسب از تلفن مغازه باش تماس بگیرم. غروب نان مغازه ته کشید. نان مغازه همی ریختی است. یا آخر شب روی دستمون باد میکند. یا وسط روز ته میکشند. دایی بهم گفت. دایی جان بپر چرا؟ نونمون تموم شده نون؟ آره دایی زودی باش از کجا بگیرم؟ همیشه از کجا میگیری از مغازه قلندر قلندر؟ آره پولشم نمیخواد بدی باش حساب دارم قشنگ معلوم بود دارم از سیرش در میروم ولی نمیدانم چرا برم نمیکرد گفتم من با قلندر حرف نمیزنم چرا دایی؟ اون سری نون باید به من باش حرفم شد این یکی رو راست میگفتم گفت بار الان دمه قروبی خودش در مغازه با نمیسته. شاگردشه. شاگردشه شه 50 ازش بگیر پولش هم نمیخواد بدی باش حساب کتاب دارم من پامو تو مغازه قرندر نمیذارم مگه اینکه بیا تو همین مغازه جلو چشم همه این محل ازم هم معذرت خواهی کنه بگه غلط کردم تازه اینجا بود که دایی فهمید مسئله نان دست خودش را میبوسد و نباید بیشتر از این با من جرأت به من اینکه پاش را از در بیرون گذاشت روی تلفن خراب شدم عجیب است که به همین زودی شماره لاله را از حفظ شده بودم یک یارویی برداشت الو صداش از بسکت و کلوفت بود به کلم زد قد کنم نکردم گفتم الو سلام میتونم اگه امکان داره با لاله خانوم صحبت کنم با کی؟ با لاله خانوم خانوم شکیب ایشون یه دختر خانومی هستن کجا رو گرفتی؟ از این واضحتر چی باید می گفتم؟ گفتم مگه اونجا منظر خانم شکیب نیست؟ لاله شکیب نه بابا خدا روزی تو جای دیگه حواله کنه دوباره که شماره رو شک کردم دیدم یک صفر رو پس و پیش گرفتم دوباره گرفتم باز هم کلی بوخ خورد نصف جانم را به خرخره هم رسند تا گوشی رو بردارم. وقتی هم که برداشت صداش آنقدر خوابالود بود که روم نشد داره درست حالا احوال کنم فقط روم شد ازش بپرسم این چه وقت خواب دختر؟ یکم تلویزیون تماشا کردم خوابیدم تو خوبی دلیل را ببینید نصف بیشتر کسانی که دم غروب چرت میزنند همین شکریند هیچ دلیل قانه کنندی برای کارشان ندارند گفتم میخوای بری بخوابی؟ اگه بخوای من میتونم به زنگ بزنم نه نه دیگه بیدار شدم بگو تو خوبی؟ پرت میگفت چون کسی که کاملا بیدار باشد دوبار پشت سر هم یک سؤال را نمیپرسد گفتم من خوبم واسه قرار فردا زنگ زدم همون موضوع آره بگو کجا بیام دنبالت؟ میای طرف های ما؟ آره هر جا که تو بگی قله مرگی خوبه؟ قله مرگی؟ کجا میشه؟ بیشتر مردان وانمود می‌کنند که محله‌های جنوب شهر را نمی‌شناسند. یعنی اگر شما توی میدان مقدم سراغ وسفنارد را بگیرید، کسی چیزی بهتان نمی‌گوید. ولی مثلا از همانجا جا یک راس ولنجک را آدرس می‌دهند. گفتم قلعه مرغی میدان فلا، مقدم، معروفه. آره اسم قلعه رو شنیدم. نه نه نه نه نه قلعه نه قلعه مرغی. باید اسمشو کامل بگی، میفهمی خیلی خوب حالا چه فرقی داره قلعه همون شهر همون همونجا که به خاک سری معروفه الان دیگه نیست ولی چندون خوشنام نبوده نباید بگی قلعه درستش قلعه مرغیه باید بگی قلعه مرغی لاله تا حالا با چند نفر سر این مسئله سرشاخ شده باشم خوب است اسم قلعه مرغی مثل اسم خلیج فارس است اگر تمام و کمار گفته نشود یک جای کار لنگ میزند اما کو گوش شنوا. گفت نه اونجا نه تو بیا طرفای ما گمرک چطوره گمرک گمرک خوبه کجاش گمرک به سمت میدون قزوین باشه فردا ساعت دومیم میام دنبالت دو یه چیزایی هست که باید بهت بگم اگر ماجرای استخاره نبود آنشب شب جان میداد برای اینکه یک خواب راحت پشت پلکم بیفته ولی ماجرای استخاره بود و کاریش هم نمیشد کرد یک مشکلی هم که بود این بود که باید برای فردا یک وسیله یک چیزی جور می کردم چون به گفته بودم که فردا میروم دنبالش با پای پیاده می شم از سر قرار رفت ولی اسمش دنبال رفتن نمی شم.